تولید قدرت تارس. تارز بگذار مختصران گریزی بزنیم و به نکته که در حال اکتشاف آن هستی بپردازیم. به نظر می آید نمی توانید در درون خود به نتیجهی برسیم علتی برای این قضیه وجود دارد درون تو انگیزش های زیادی فعال هستند که عموماً بر روی هیجاناتت صرف می شوند ترس یکی از نیروهای وادار کننده است که آدمی را به قهقرا سوق می‌دهد. در این صورت مخرب و ویرانگر می شود اما به طبیعت ذاتی انرژی اگر چه یک نیروی منفی قلمداد شود لذا می‌تواند به منظور تحقق آرمانهای مثبت به کار گرفته شود توجه کن این یکی از عمیقترین رازهای طبیعت است که برای از بازگون می کنند مگر بودا نگفت که نفرت سبب نفرت می شود. بسیار خوب، پس بگذار بگویم که نفرت می تواند عشق بیافریند. یا به عبارتی دیگر، نفرت می تواند همان محصولی را به بار آورد که عشق می تواند. میبینی چه عاملی قدرت را درون تو بیدار می کند. چه موضوعی بیش از هر چیز دیگری تو را آشفته می کند؟ چه اتفاقی باعث می شود با خودست درباره موضوعی حرف بزنی آنچه بیش از هر آمل دیگری خشم تو را برمی چیست؟ به این عوامل فکر کن هر کسی می تواند هنگام قرار گرفتن در اعلام مخالفت دیگری بر سر بعضی موضوعات جدا برانگیخته شود اما نمی تواند آن را ابراز کنند در این موالد است که با خود به بحث میپردازی و فشار عاطفی در درونت افزایش می‌یابد. گاهی این فشارها با علای یک ناسزا راهی برای رهایی می‌یابند و همین امر موجب یک شب پر از نزاع و ستیز می‌گردد. این راز را هم به تو گویم. من نام این پدیده را قانون تلاش معکوس گذاشتم. فرض کن نیاز به پول داری و به این هم فکر نکن که مثبت است یا منفی. فقط به شکار پول نپرداز بلکه روندی را که تا امروز به کار میبستی معکوس کن نفرتی اصیل از برای هر چه در زندگی میبینی بنا کن این نفرت به تو احساس پرقدرتی در مقابله با آن میدهد و هرچه مورد تنفرت باشد بدون تردید از آن تو خواهد شد فقط به این علت که به باسطه احساس شدید ناخوشایندی که به آن داری به حوزه آگاهی تو ج می اینکه نفرت نفرت میآفریند درست اما همین قانون معنای مهمتری هم دارد و آن این است که نمی توانی از شره هر هرچه که از آن نفرت داشته باشی خلاص شوی. چون نیروی نفرت آن را به تو میوند. به آن بهاعتناایی کن ابراز ناپسندی کن یا آن را از خود دفع کن می بینی که به دنبال راه میافتد. و همه جا تو را تحقیب میکنند وحشت و حراس واقعی از هر چیزی همان را به سویت جذب میکنند موضوع نفرت در افکار آدمی ریشه میدهاند و همه جا در شکار اوست به این ترتیب عملا در زندگی او به تجلی میرسد پس چنانچه احساس عاطفی مشابهی نسبت به هر چیزی در زندگی داری این را بدان که همان برایت محقق خواهد شد دائم در حراس چیزی باش از آن وحشت داشته باش از آن متنفر باش و همین موجب می شود به سوی تو بیاید این قانون معکوس خداست در اینجا قدرت کل در حال کار است از ثروتمند بودن متنفر باش مطلقا و دائما در حراس از ثروتمند شدن به سر ببر آنگاه واقعا برایت به یک وحشت بدن می شود بعد از آن با وجودی که با هیچ منطقی جور در نمی آید، روزی را خواهی دید که ثروتمند شده این. چون قانون می گوید دقیقا همانی بر سرت خواهد آمد که از آن بترسی. در اینجا خشم هم که صورتی از ترس است می تواند برای کسب ثروت کمک کند خشم به هر چیزی موجب ایجاد یک الگوی فکری در ذهن می شود که به مقابله با آن می تردازد. و در نتیجه این ستیز قانون معکوس می شود و آن را به سوی فرد جد می کند به این نه هر آن چیزی که تماما مورد قهر توست از آن توست ماننده اینکه که مشکلی داشته باشی و برای برطرف کردنش آن را در آغوش بگیری در خواهی یافت که فقط رشد خواهد کرد قدرت کل در طبقه خاکی سریع تر متجلی می شود تا قدرت اکل چون در اکثریت نوع بشر که به حکم طریعت خود منفیند عرصه عمل مناسب دارند تجلی منفی نفیجه توان منفی الکتریکی در مغز است که الگوهایش را به ذهن اعمال و افکاری را جذب کرده و به فعالیت وامی دارند یب های تصوری مورد تعلیم توسط متافزیسیان ها خطاست چون کوشش میکنند آموزش دهند که همه چیز به سوی آدمی میآید مشروط بر اینکه الگوهای تصوری خود را با استفاده از قدرت مثبت به کار گیرد. این درست، اما در عمل نتیجه بخش نیست. گروه دیگری هستند که میگویند خلوص شخصیت به عنوان امتیازی جهت موفقیت در امور مادی و مینوی به کار خواهد آمد. این هم صحیح است، اما کافی نیست و گروه سوم هایی هستند که معتقدند با قدرت اراده می توانند فوائد مادی ببرند این هم حقیقت دارد اما نه کاملا این را به خاطر بسپار پیروزی در امور گوناگون زندگی با معیارهایی از این قبیل که چه نقشه هایی آن می ریزیم از چه جایگاهی قرار داریم ادهی کسان ما را تایید می کنند و یا این که از حمایت اخلاقی و مینوی دیگران برخوردار باشیم تعیین نمی شداد. تنها معیار ارزیابی پیروزی ما به نیرویی است که در اندیشه نمی گنجد و آن روح خداوندی نام دارد اگر از این نیرو استفاده کنیم و تا جایی که در توان داری آن را هدایت کنی پیروز خواهی شد اگر آرزوی پیروزی داری پس خودت را در مناسب ترین وضعیت برای پیروزی قرار بده. به منظور تحقق امر آفرینش و نگهداری از کارکرد قانون در درونت، باید یک حاله مثبت داشته باشی. حاله مثبت به سادگی عبارت هست از فضای شخصی تو که مستقیماً و به یقین توسط کوشش ارادی و تمرکزی یافته، تیه چنانچه اجازه دهی نیروی واقعی طبیعتت به خاطر خداگاهی مفرط، شرم بزدلی یا حساسیت بیش از حد مسدود شود آنگاه عملا از دیدن وحشیگری گستاخی و تظاهر مثبت عوام رنج خواهی بود همه كینهت را بر دل حالا از نه فقط منفی می شود بلکه عملا به گونه ای جزم منفی می شود به این معنی که ترشار از باریان چنان منفی می گردد که اولا تبایع مثبت بیشتری را به خود جلب می کند طبیعت هایی که هرچه بیشتر بر روی های است اعمال قدرت می کند. این یک امر غیر معموم نیست یکی از قبائد عوالم روانی است که در جهان فیزیکی هم برای حیوانات و هم برای بشر یکسان عمل می کنند. چون آنچه با استفاده از یک فرمان ذهنی به این افراد اعلام کنی که از حریم فردیت خارج شوند، و از آنها تقاضا کنی با احترام به این امر توجه کنند، از سر راحت کنار خواهند رفت. باید روحیه ذهنی شخصی مستحکمی اتخاذ کنی و استواری و خودباوری کامل عمل کنی. نقاط ضعف طبیعت خود را پیدا و اقدام به بنا کردن کیفیات ذهنی و شخصیتی متضاد آنها کن این چپه را که مشکلی در ساختار ذهنیت وجود دارد ابتدا از سر خود بیرون کن و از آنجا دست به کار وقتی خود را از شهامتی این چنین مصبت انباشته کنی میزان نیروی متمرکز و که تولید می‌کنی، در حدی است که دیگران حرکت آن را در اطرافشان حس می کنند. در برابر همه کس و همه چیز رفتاری بی‌پروا و مثبت پیشکن. نیروی مینوی خود را در پس قضی لبخندت، است پاسخهایت و فرمانهای ذهنی از به خدمت بگیر و گذار مستقیما به کنه موضوع وارد شود و با ذهنیت مخاطب کار کند در این مقطع میل دارم به دو موضوع اشاره کنم نخست اینکه باید همیشه افکارت را مورد بازنگری قرار دهی و اطمینان حاصل کنی که نگرانی اصلی تو احساسات دیگران نیست دوم اینکه هوشمندی را مترادف با صاحب اندیشه بودن نگیری این جهان صحنهٔ نمایش عقل است این نمایش جز بازی ذهن البته گستره بیپایانی فراسوی ذهن نهفته است که فقط روح به ظهور رسیده می تواند به آن وارد شود. فراسوی این جهان نور و تاریکی، نیروهای مثبت و منفی، اقلیمهای بیشماری از نور خالص، زیبایی گشاده و شعف موزون وجود دارد استاد از محدودیتهای کالبری عبور در آگاهی کامل به این اقالیم سفر کرده و در بازگشت آنچه را که دیده، شنیده و تجربه کرده است به روشنی به خاطر می بنابراین مرگ به میزان توهمی است که این دنیا وقتی این جهان را ترک می آنگاه که از میان دروازه مرگ عبور می کنی می توانی به جهانهای بالاتر وارد شوی، به منظور حرکت آزادانه در جهانهای دیگر لازم است بر ارکان برتر خود تسلط پیدا کنید هرگاه کسی باور دارد که وحدت با خدا به معنی آگاهی کامل از تماس دائمی با نور و صوت و شعف برین است و خود را محدود کرده است ما کاملا ماوراء این مفاهیم قرار داریم چون نور و صوتی که در اینجا تجربه می تنها بازتاب و نشانی از نور و صوت خدا در متعالی ترین نواحی بهشتی است آرزوی من این است که تو به میزانی از تبهر دست یابی که به تنهایی به اعماق عوالم درون سفر کنی و به حمت خودت حکمت، دانش و عشق خداوندی را تحصیل کنی توهمات یا مایا ابری فریبنده از شکوه افسون است که قدرت منفی برای تنیدن دام روح از آن سود می و اینگونه روح را در امپراتوری خود به اثارت میگیرد. جهان توهمات کششی قهقرائی به روح وارد می که او را به بردگی با می‌دارد. همه این اعمال در طبع قانون کارما یا قانون علت و معلول انجام می شود همه آنچه در این جهان با فعالیت فیزیکیت انجام می بازتابهای های غیر وابسته و خالص جوهره اک است و در این عرضه خیشی که عمل میکند تنها نفس تو نیست بلکه نفس کل آدم است این را درک میکنی فقط و فقط یک نفس واحد وجود دارد که به نیروی اقفال جهل ذاتی خودش به نظر کسرت میآید. در حقیقت وارا یک فیلم است، اما من و تو هم همانقدر غیرواقعی هستیم همه چیز خداست لایتناهی، خالص و واقعی فارغ از حد و مرز و فراسوی جهدهای دوگانه مبرا از کیفیتهای قابل تفکیک این معنای قایی حکمت است. خدا تنها واقعیت است. خدا در همه چیز یافت می شود بدون اینکه از هیچ رنج یا تقصیری تأثیر بگیرد. همه عالمیان من جمله من و تو اقامتگاه خداییم و هر یک صورتی است در ان جنباننده فعالی که اکنام دارد و به سهم خود نور آن را تیره می سازد. هدف از نشان دادن توهم به تو این است که به توانی در زندگی اصول کیهانی را از دانش محدود میزه هجوم قدرت خدا مانند جزر و مد دریاست در هر دو جهت عمل میکند اگر بتوانی این حقیقت عظیم را دریابی با روح خداوندی یکی میشوی دیگر هرگز قدرت نیرو و حیات خود و دیگران را جدا از منشء واحد های خداوندی نمیبینی دیگر هرگز در افکار و اعمالت از آن جدا نیستی دیگر هیچ گونه محدودیت پذیبی در منابع زندگیت را نمی شناسی. در این حال که از فردیت و استقلال خود آگاهی کامل داری دیگر خود را به مثابه یک واحد جدا قلمداد نمی کنی. و در نتیجه بر برمرنای تونین استنباتی هم عمل نمی کنی. آدمی یک قانون است مرکزی در کالبد خداست میخواهی بدانی مرکز خدایی کجاست؟ همه جا تا وقتی که به تفکر در وحدت ادامه دهی مرکز یا قانون در سلسله گسترش افکنده میشود و به تماس با قدرت عذلی تعبیر میگردد از طرف دیگر هنگامی که احساس این اتصال را گم کنی به واقعیت یا دست کم به نمایش دوگانگی و کسرت اعتراف می کنی. به این ترتیب توخم تو را به می اندازد این چون این تو خود را نقشی در آویفت از ذهن میشماری. این همان توخم کبیر است در این وضعیت در که تو از عالم تیره و مپم است تو در واقعیت روحی زندگی می کنی که به ظرف ضعیف، مجزا و بی تن تفعیید شده است در میانه قدرت اما در درمانده و ناتوانی چنانچه فقط عوالم مادی را واقعیت بدانی عمدن خود را از واقعیت حقیقی محروم و محکوم به زندگی در جهان توهم نموده ای همین توهم نقش حقیقت داشته باشد مزارک تو مبتدا و تابع باور خود بوده و در پناد اقفال به سر میبری وقتی ذهن بر روی این نمایشات بسته باشد آنگاه که انعکات اشیا به روی واقعیت باز شود واقعیت آغاز به همکاری می کنند توبه هم باور اندیشه و آرمان غلط می باشد که با چاشنی عواتف آنچنان واقعی می نماید که از تأثیرات حاصل از آن برای ذهن محدود بشر واقعیت می آبد نقش بزرگی در آفریدن باور به این سه جهان توهم هم ایفا می کنند همین نقش باعث شده است که این توهم عظیم واقعیت جلوه کند پس این را هم بگویم که همه عالم اطراف تو و حتی خود تو توری تنیده به نام مایاست که قدرت آفرینش این جهان است مایا نیروی خود را به عرصه کائنات گردان و صورتهای سیر تکاملی افراد جاری می کنند در یافتن این راز دانستن نهره کار آن در صورت امکان اوج گرفتن بر فراز آن شکستن تلسم کائنات و اوج به سوی بالا گذر از لایه های محسوس و عالم مرئی و ورود همزمان به مراتب درون عبور از تمامی چین اقلانی و طبقه بندی های عوالم روانی قاعدتا نخستین رسالت و معالن مسئولیت ناخاسته بشر است تجانس با روح خداوندی و خدایی را در سیر مراتب به سوی بهشت و پلکان بلندی قرار داده است. و از قدرت انجام هر آنچه که اراده کنی در این جهان مخوردار خواهی شد. تا همینجا کافی است.